جلسه سی قواعد فقه و سیاسه بحث الگوی ترجیح اهم بر مهم بررسی الگوی جناب و احمد الیوسفی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین رسول الله علیه سیدنا و نبینا و, و نبی القاسم محمد و اهل احلویت تاهرین المعصومین سیم و بقیت الله فالعرضین روحی و عربه العالمین الله الفدا با تحکل بر خدای اتعال و توسل به پیامبر گرامی و احلو بیت اتخار علیه السلام بحث رو آغاز می کنیم پس مفصل ما نقد و بررسی کردیم الگوی جناب دکتر عبدالمچی سوسفه رو و بعد به الگوی جناب استاد احمد علی یوسفی رسیدیم در بحث الگوهای تزاهومی ابتدایشان یک الگو برای رفع تزاهوم و مثلت سنجی در داخل یک نظام رو در نظر دارند و در قدم بعد رفع تضاهم در میان نظامات مختلف در ارزه هم رو ما اگر بخوایم حالا اجمال الگو رو بخواییم ارز بکنیم از منظر الگویی که برای رفع تضاهم و مثل سنجی است این الگو خب محور بحث رو به اهداف گذاشته و اتفاقا یکی از بحث های مهم به نظر من در بحث فقه نظام سازه که ما کلیت بحث در مورد ما قواهد فقه سیاسه و الحکومه هست قوا... بحث اهم و مهم رو معمولاً به عنوان یه قاعده مطرح میکنن با بیانی که بنده دارم پیش میبرم در واقع منظومه و مجموعه از قواعد مربوط به اهم و مهم داریم که بعضیش رو پرنگ بحث میکنیم و میخواییم یه مقداریم به الگوی موردی هم برسیم خب ایشان میفرماند که ما باید بریم پس سراغه اهداف، بحث هدف نهایی رسیدن به اون نقطه مطلوب و خاصی است که هر انسان یا جامعه باید برای دستیابی به اون کوشش ویژهی رو دنبال کنه اینجا این رو هم من ارز کنم در واقع یه تعریف هدف شد و سعادت به عنوان هدف غایی انسان این میشه هدف مشترک کل نظامات دینی بعد طبیعتا باید بیم سراغ هر نظامی و بعد مصلحت و دفع مفسده هر کدوم از اونها تبدیل به هدف میشه تعبیرشون اینه در هر عرصه باید هدف یا اهداف همسو و مرتبط با سعادت رو در پیش بگیرند هدف همسوی با سعادت در سطح خرد بیشتر بیان شد اما در سطح کلان و جامعه با چه اهدافی در نظر بگیریم اهداف مثلا کلان اقتصادی موجب تحقق این اهداف میشه مصلحت اقتصادی جامعه خواهد بود پس در اینجا ایشان بین هدف و مصلحت این تلفیق رو فرمودند در واقع در از منظرشان هدف همون مساله است که هر... که, یک... که یک نظام اون رو دنبال خواهد کرد. خب مجموع اینها ما رو به سعادت قراره برسانه پس تعریف هدف در کتاب های فلسفی اجتماعی معمولا تو این چارچوب هدف های مختلفی میدن اما تعبیل که ایشان بیارن منظور ما از هدف نقطه مطلوب و است که هر انسان یا جامعه‌ای برای دستیابی به اون کوشش های رو دنبال میکنه این نقطه رو هم من عرض کنم در واقع غیر از حالا این تعریف از هدف یه مفهوم راهبرد هم ما داریم اون چیه راه بورد؟ همین کوشش هاییست که ما برای دستیابی کارهای اساسی اون روش هاییست که برای دستیابی به هدف و کارآمدسازی اون ما دنبال میکنیم به اینگه راه بورد خب اون میشه کار بعدی پس ما در یک نظام باید مبانی داشته باشیم، اهداف داشته باشیم، راهبرد داشته باشیم، روش داشته باشیم. حالا ما الان می‌خوایم رفع تضاهم کنیم، بعد چه کار کنیم؟ بینه به نظر میرسه از بنظر بنده هم در واقع تضاهم در تضاهم در اهداف می توانیم داشته باشیم، تضاهم در راهبردها می توانیم داشته باشیم تضاحم در روش ها هم می توانیم داشته باشیم این روش با منکی تنافی داره جناب استاد یوسف احمد یوسفی تمرکز بحث رو گذاشتن روی اهداف خب خلاصی دیدگاه معلوم شد در هر نظامی اینا رو داریم می در ساعت اقتصادی هدف اقتصادی نقطه مطلوب و خواسته است که هر انسان فعالیت های اقتصادی و کل نظام اقتصادی راهبردها ها و سیاست های اقتصاد خود رو برای دست به اون سامان میده. پس هدف اقتصادی چیه اون نقطه مطلوب است که قرار بهش برسیم بعد می هر جامعه هر نظامی هم اینطور داره بر اساس نظام اجتماعی مومد بیاییم نظام اجتماعی داره زیر نظام هم داریم نظام فرنگی اقتصادی حقوقی و سیاسی خب این ادبیات با عدبی جناب اوستاد رشاد هم همسویی داره خب ایشان به عنوان نمونه میفرمایند که خلاصی بحث حال بحث خیلی مفصله من لب مطلب رو ارز کردم فقط دنبال یه هستم که اون فقرات خاص رو عرض کنم ایشان میفرمایند با بهره گیری از عقل و نقل اهداف نظام اقتصادی اسلام دستیافتنی است که این اهداف به سه دسته تقسیم می شود. پس الان اون نکته‌ای که بعضی دوستان در نظر دارند که آقای اهداف رو چگونه باید به دست بیاریم اون یه بحث دیگه است باید اهداف باید استخراج بشه در آن بر اساس آموزه های دینی نیاز به کشف هر یک از اهداف در رتبه های مختلف برای کشف نظام شرعی و نظام دینی داریم اگر نظام اقتصادی دینی داریم باید اون اه اه اهداف رو کشف کنیم مبانیش رو باید کشف کنیم راهورت های کلان و ثابت رو کشف کنیم سیاست های کلان رو کشف کنیم متغیرات رو و خودمون تدویر کنیم خب اینجا باید کشف بشه حالا اشان می هدف عالی نظام اقتصادی اسلام در سطح کلان رفای عمومی است پس الان در اقتصاد این رفای عمومی شد هدف نهایی ربطش با مسلحت چیه؟ شما می در عنوان بحث رفاه عمومی رو به عنوان مسلحت نام نهادیم چرا که رفاه عمومی نسبت به سعادتی که آفرنش انسان به خاطر آن است به عنوان هدف مقدمی است پس هدف نهایی آفرنش سعادت هدف آلی هر نظامی اینه که ما رو در هر نظام نظام اقتصادی سیاسی هر جایی ما چیز رو به عنوان هدف بذاریم که مقدمه دهسیابی به سعادت باشه به عنوان هدف خلقت خب نسبت به اون هدف چه در واقع مقدمیه اما خود تو نظام خود این رفاه عمومی میشه هدف عالی نظام اقتصادی ولو اینکه نسبت به تحصیل سعادت میشه هدف مقدمی خب بعد می از چه راهی ما این رو اثبات کنیم از راه دلیل عقلی از راه دلیل نقلی بعد این حالا از باب نمونه که دو روایت رو من بخوانم شبیه این رو شما در استنبات نظام باید برای هر کدوم از اون نظامات پیدا کنید از الکالله همار رفاهیت فی معیشتی ما ابقیتنی معیشتن اقوا بخوام حالا طاعت کرد و عبل و ها رضوانه این از امام باقیل پس از الاب کالله هم من تفی فی معیشتی خب بعد روایت دیگه ای داریم خب اینا به کار بردن یه روایت خیلی زیبا حالا موارد خیلی متعددشان برای اثبات این در واقع مسئلات عالی هر کدام از مباحث رو ما بوئن سوآگی بخوایم بیایم اثبات کنیم باید اون هدف غایی در اون نظام نظام سیاسی ببینیم هدف نهاییش چیه بعد این نکته رو میخوام عرض بکنم که الان مثلا نشان فرمودن رفاه خب ما سوالم می کنم آقا رفاه چیه بر اساس برخی از روایات و عناصر عقلی ایشون چهار عنصر برای رفاه بکار کار پس رفاه شد هدف عالی در اقتصاد رفای عمومی میگن رفای عبارت از برخورداری از آسایش در زندگی است بر اساس آموزای اسلامی چهار عنصر داره سعه رزق در حد کفاف سلامتی امنیت روابط سالم اشتهادی یه روایت خیلی زیبا داریم حالا من در اینجا الان پیداش نکنم ولی در ذهن خودم دارم این که بله بله الان پیدش کردم خب ایشان میخوان بیان اهداف میانی نظام اقتصادی رو لیست کنن پس رفاه اون شد سهد نهایی این روایت از امام صادق علیه السلام سلاست و اشیاء یحتاج و ناس و ترن الیها الامن و العدل و الخصب سه چیز مردم همه به اون نیاز بندند سلاست و اشیاء یحتاج و ناس و ترن الیها الامن و العدل و الخصف اینجا, اینجا این رو باید نگفته این بس اقتصادیه نیاز مردم رو گفته لذا این رو ما میتوانیم در جای مختلف هم به کار ببریم امن و امنیت و عدالت و رشد آبادانی خب، رشد آبادانی جنبه اقتصادی داره پس الان جناب استاد یوسفی چه کار کردن آمدن گفتن هدف نهایی چی رفاهه خب چرا اون حد نهایی هست؟ بعضی موارد رو استناده میارن مثلا میگن مافق تحبیر کفاف رو دارن توابیر دیگه روایتی رو میارن رفاه رو معنا کردن سعه رزق و اینطور اونطور خب ما الان با این الگو اگر بخوایم بحث تزاهمات رو مطرح کنیم داریم چه کار میکنیم مقدمه چینی میکنیم بر اساس الگوی جنابستاد یوسفی ببینیم تزاهم رو باید چه کار کرد ایشان بعدها خواهند گفت که آقا پس این اول میان اثبات میکنن رتب بندی اهداف رو خب در واقع وارد بخشی از نظام شناسی دینی شدن از منظر بنده بخوام اگر بگم نظام شناسی چیه میگم مبانی اهداف راهبردها و روشها و عناصر نظام باید استنباد بشه الانشان رفتن سراغ اون قسمت اهداف نظام سیاسی میخواد باید مبانی اختصاصیش رو در بیارید اهداف اقتصادی نظام سیاسی رو باید در بیارید راه های و سیاست های اساسی در سیاست و حکرانی رو باید استنباد بکنید از شرم مبانی و عناصر طبقه بندی احکام شرعی رو بکنید انواع احکام کلان و خرد سیاسی رو و دسته‌بندی بکنید اگر نظام تعلیم تربیت خاصیت مبانی اهداف راهبردها و اصول کلان روش ها و طبقه بندی احکام و دسته‌بندی احکام احکام اساسی احکام فریدر احکام مقدمی احکام غیری یه چارچوب بندی بکنید تا نظام اقتصاد تعلیم و تربیت رو در بیارید و نظام تربیتی نظام خانواده این خب اینا یه تکملم نیاز دارن اگر شما بخواید نظام شناسی خوبی کنید باید نظام اولویات و نظام در واقع الگوی اولویات و ترجیح اهم و مهم در هر کدوم از نظام ها را دست بیارید باید الگوی جناب یوسفی اول باید طبقه بندی اهداف کنید با یه روی کرده استنباتی و اثبات عقلی میایم اول میگیم تو اون الگو نظام اون اهم چیست اون هدف نهایی چیست مثلاً جا در اقتصاد گفتن رفاه عمومی ما در تعلیم و تربیت باید بگیم مثلا تربیت فلان آموزش فلان در نظام قضایی بگیم مثلا عدل گستری در هر کدام بعد بیایم اهداف میانی اهداف مقدماتی رو اثبات بکنیم وقتی که اثبات شد اون وقت میریم تو الگویشان قدم بعدیشان آمدن سراغ اهداف یا مساله میانی پس اهداف رو با مساله یکی گرفتن بعد میان اونا رو پیدا میکنن این روایت به درد همه جای دیگه هم میخوره سلاست و اشیا یهداج و ناس و تورن اله الامن و العطل و الخسب امنیت فرهنگی امنیت اقتصادی ادالت فرهنگی ادالت اقتصادی ادالت قضایی ادالت مثلا فعلا یه مستندات اینطوری ببیز این حالا مستندات دیگه ایشان میارن ما کار نداریم ما الگوشون رو فعلا کار داریم مثلا میان در بحث امنیت گفتن روایت مختلفی دونه امنیت اقتصاد امنیت میارن بعضیشم امنیت اقتصادی میخوان اون جایگاه امنیت رو درست کنن حالا اعتبار امنیت به در جای دیگه میخوره بحث رشد آبادانی اقتصادی و این موارد رو میگن چیه اینا هدف مقدمیه اون رفاه عمومی شد هدف نهایی رشد آوادی اقتصادی هدف مقدمی و ابزاری برای رفاه عمومی امنیت اقتصادی همینطور برای چی خب قدم بعدی می‌رسیم اهداف مقدمی و عملیاتی ایشان می‌فرماید این تعبیر رو دارن حالا در مورد اینا میشه مناقشه کرد می‌فرماید اهداف مقدمی برنامه‌هایی است که نظام اقتصادی برای وصول به اهداف میانی و عالی پیش می‌گیره این عام این قسمت ممکنه جای مناقشه باشه این اهداف ضرورتی ندارد که به طور مستقیم از ناحیه آموزه دینی تعریف شه بلکه لازم است داره دو ویژگی باشن یک برای تحقق اهداف میانی و عالی نظام اقتصادی اسلام با باید در چارچوب مبازین باشن بعد می با توجه به این دویجگی می توانه ادعا کرد که اهداف مقدمی محدود نیست خب فرض بکنیم فرمایش کامل ما جای دیگه همین رو بخوام استفاده کنیم یکی این که بگیم اهداف رو حالا لازم نیست استنباد بشه مطمئن قاعدتا هر مقدار استنباد کنیم بهتره یا با استدلال عقلی ولی عقلی که باید مستند یه جور مورد پذیر شرم باشه در چارچوب موازین باشه نکته دومش این که آقا عق مقدمی محدود نیست خوب باشه این الگویشون الان چند مورد رو آوردن یک ایجاد فرصت های شغلی مستند توضیح دادن دو تثبیت سطح عمومی قیمت ها سه خب همین دو تا رو ما آوردن الان برای فضا اقتصادی ایجاد فرصت های شغلی دو تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها ولی به قول میشه چیزای دیگه هم آورد. خب این الان بحث مقدماتی بود برای ما بحث اصلی ما که به بحث همون بر... برمیگردیم تضاهمه ایشان تفسیر سعادت رو در نظر میگیرن بعد میگن تضاهم در پیگیری مساله به سه صورته تضاهم در مساله نظام اقتصادی اسلام دو تضاهم مساله نظام اقتصادی با سایر نظامات اسلامی جیم تضاهم مساله فرد و نظام اقتصادی بعد حضا در نظام اقتصادی رو چه کار میکنن؟ میگن آن اهداف نظام اگه سرطبه نشد اول رفای عمومی به عنوان هدف عالی بعد هدف میانی رشد و شکوف اقتصادی ادالت اقتصادی امنیت اقتصادی سه تا شد بعد رتبه سوم هم که موارد مختلفی که دو حالایشون میگن اگر چه کار کنیم پاسخشون اینه اگر تضامن میان رفای عمومی که اون هدف نهایی، و یکی از این سه هدف پیش آید که مال رتبه دوم بود هدف میانی به یقین یعنی رفای عمومی مقدم است رتبه میانی چند تا هدف گذاشتند؟ سه تا بر اساس اون روایت رشد و شکوفایی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی میگن آقا اگر اون رفاه عمومی حاصل نشه خب اگه بین اونها تضاهم باشه چه، کدام مقدمه میگن اون بالایی مقدمه رفاه عمومی که هدف نهایی بود گرچه تحقق تضاهم بین رفاه عمومی و بین عدالت اقتصادی امنیت اقتصادی غیر متصور است خب ایشان یه مقداری اینجا شل شدند که من یه نقد اساسی که دارم همینه. مطمئن میخوام میگم که این رو میتوانیم چه کار کنیم، تعمیم بدیم. نقدی که خودشون یه جوری من اینو تعمیم میدم. نقد یک چیه؟ اینکه آیا اصلاً بین در واقع فرقاایی و میانی یا مقدمی امکان تضاهم هست؟ به نظر میمثل پاسخ منفی است چرا؟ چونکه اینها گام های اونن؟ لذا خودشان دو مورد رو الان کوتاه آمدن سه مورد هدف میانی بودند شکوفایی اقتصادی عدالت اقتصادی امنیت اقتصادی؟ خب ایشان گفتن این دو تضامن جور نیست اگر خلاصه، اگر تضامن بین رفای عمومی و هر یک از این سه هدف رشد و شکوفایی ادالت و امنیت اقتصادی باشه به یقین رفای عمومی قدم است گرچه تحقق تضامن بین رفای عمومی و بین ادالت اقتصادی و امنیت اقتصادی غیر متصور است چون هر یک از این دو به هر نهوی تحقق یابن باری سه افزایش رفای عمومی خواهند بود البته اگر بپذیریم که رشد اقتصادی باید در بستر عدالت تحقق یابد در این صورت نیست تضاهمی بین رفاه و رشد اقتصادی اتفاق نمیافتد باز کوتاه آمدن ولی پولساش عمو میارن اما در صورتی که رشد اقتصادی به دور از عدالت دنبال شود آنگاه بحث تضاهم رشد اقتصادی و رفاه مطرح می شود باید اهم و مهم کرد پس خب این یک تضاهم که میقدریم پیدا کرد؟ نکته بعد میگن آقا اگر این سه تا هدف ما تو رتبه دوم سه تا هدف اون طبیعتاً هدف غایی باید یکی باشه تو همه نظامات خب اما اهداف میانی میشه دو تا باشه سه تا باشه چهار تا باشه میگن حالا اگه بین اینها تضاوم حاصل شد چه کار کنیم اینجا میگن هر کدام ما رو به اون هدف عالی نزدیک‌تر کنه و اهمیت بیشتری داره هر یک از سه هدف دیگر ممکن است با هم تضاهم یابند وقتی رفای امور رو هدف عالی نظام اقتصادی معرفی کردیم در نتیجه هنگامی که تضاهم بین سه هدف پیشی روی هر کدام از اهداف در وضعیت تضاهم ما رو به هدف عالی نظام اقتصادی اسلام یعنی رفای امور نزدیک تر کند اهمیت بیشتری خواهد داشت و تردیم آن بر اهداف دیگر از اقتصادی خلاصت و انجام بگیره خب این هلگو عملا چی شد؟ تو همه نظامات، تو نظام سیاسی از منظر اشان میگه آقا اهداف قایی و میانی و مقدمی رو بشمار هر کدام که اولا نباید تضاون با اون بالای پیدا کنه هر کدام تضاون پیدا کرد اون مقدمه اگر غایم قد تضاوم پیدا کرد با اینا غایم مقدمه میانی با پاینیا میانی بر مقدمه مقدمه اگر بین خودشون تضاهم شد هر کدام که خلاصه در تضاهم خلاصه اهداف هم رتبه هم رتبه یعنی چی در در اهداف میانی یا اهداف مقدماتی عملیاتی هر کدام که ما رو به هر حال که تأثیر مثبتی داشته باشه تناسب داشته باشه اون مقدمه خب این طبیعتاً با جای دیگه بعد بررسی بکنیم از اون طرف مثلا گفتن رفاه عمومی بعد میگن رفاه عمومی دارای مراتب شدت و ضعف داره یه مرتبه ما زیر خط فقر مطلق داریم یه مرتبه ضروریات زندگیه یه مرتبه زیر خط اینایی که زیر خط فقر هستن زندگیشون رو در حد کفاف پس یه از پایین که بیای میشه خط فقر مطلق بعد میانیم بالا فقر نسبی اینا از ضروریاتشون تامین بشه تا از فقر مطلق نجات پیدا کنن برسن به فقر نسبی خب ضروریات زندگی مقابلش چیه؟ عدم ضروریات میشه فقر مطلق در اقتصاد اگه افرادی که زیر خط فقر نسبی قرار دادن چه؟ یه مقداری آمدن زندگیشون در حد به بالاتر از ضروریات میشه کفاف ب... بالاتر از کفاف میشه چی؟ برحال میشه اسراف رفاق میشه میشه یه مرحله کفاف و گشایش یه مرحله هم میشه چی بالاتر میشه رفاه و بیش از رفاه میشه خلاصه اسراف خب ما از جد شهر اینا رو باید بگیم کدام حرام واجبه پس در مجموعه اشان میگن اگر هر یک از اهداف میانی با هم تضاهم پیدا کنن چه هدفی و با چه ملاکی میتوانن مقدم شود در هنگام تضاهم مراتب اهداف میانی اگر ملاحظه شد در صورت عملیاتی بهتری پیدا میکنند حالا میرن مثال میزن ادالت اقتصادی مثلا از فقر مدلق اگه میخوا نجات پیدا کنه اونجا از طریق ضروریات خب دوستان ما میخواستم یه فرصتی باشه هم اولگو رو بگیم متساوی فرصت کم شد در, در اولگوی جناب استاد یوسفی ما شاهده این هستیم که میان ابتدا اون هدف نهایی رو معلوم میکنن مثلا در اقتصاد میشه رفای عمومی بعد میانیم در اهداف میانی مثلا سه هدف رو پیدا میکنن هدف سه هدف مثلا در عرض هم یکی امنیت اقتصادی یکی گش... اون رشد و شکوفایی اقتصادی و موارد دیگه بعد هر کدوم از اینا رو سرط... سرطمه می کنن. اون سطح ضروری سطح گشایش و سطح کفاف ضروری کفاف و گشایش اگر ضروری هر کدوم ضروری هر کدام از اینا مقدم میشه بر کفاف و گشایش اون دو دیگه کفاف اونها مقدم میشه بر گشایش اون و این الگو رو تصویر میکنن الحمدلله رب العالمین